كنان كارگردان مانی حقیقی بازیگران محمد رضا فروتن، مرتزا ترانه علی دوستی، مینا، افسانه بایگان، آذر، و بهرام رادان، علی. نویسندگان فیلمنامه مانی حقیقی، اسقر فرهادی. موسیقی کریستوف رضایی. تهیه کننده مرتزا شایسته. دو تا ابروی مینا و زیر چشماش که گود رفته و سیاه شده کافیه که عمق غم رو تو صورتش ببینیم انگار خیلی وقت لباش به خنده باز نشدن چنان چشماش ثابت و بی انرژی به یه نقطه خیره شدن که انگار داری یه عکس رو تماشا میکنیم به جای چشم توی صورتش انگار یه جو سنگ سیاه کار گذاشتن همینطور که دستگاه تخلیه چاپ با قدرت فرابون داره راه ای رو تکیه را کرده تکیه ر اینا دیگه توقفش از دیگن متعفل چه تاق شده و از آشباسخون نمیزنه بیرام هنوز بای فخریه تمامی نشده این بار باید فنر چند متری رو بفرستن تو چاه تا آبایی رو که تمام کف آشباسخونه رو گرفته بهتون از راهاب رج مرتضی این مجسمه تراتمیز با لباس کاملا رسمی تو بالکن نشسته و فقط به نقطه نامعلومی خیره شده که یکی از کارگرای تخلیه چا گوشی تلفن رو برش محبه. تو شما گوشه با ببخشید گفت کار فوری داره بفهمید سرش بله بفهمید من میشه هستم تشریف چند تا سودا پیک اومده بله میگم پیک اومده واسه یه چیزی آورده چیزیه نه نه نه مستوان راست چنج از کردم چنج وقت چه گذاری؟ حاضر. بله. خانم ساده. بله شد پنجره رو باز کن. تو من سلام خوبی؟ معاف. از اونجا چقدر؟ عزیز چطوری؟ بشار چطوری؟ ولام خواستم زنگ بزنم بهش. آلو گوشه بود بهش. به حالش. اصلا. پسر کیش را. حف یکیش را یه دکتر میرفت. رفتم که روز دارم میرم جوابش رو این نگیم بذاره. اون موقع خانومم جمع کن از اون وسط زهشته شده. الانم تلویزیون خلاص. خوبی؟ بابا ندارم. چه خابی؟ هر تام حالا مگه خونه یعنی چی؟ میشه کموزه ایزار بسید دو قابل شما رو نداره خب خب کارگر سریع پولا رو میشماره و پول خودش رو برمداره و بقیه رو به مرتزه پسید نه نه مادرجون بی خود نگرانی ما خوبیم هیچ مشکلی هم با هم دیگه نداریم شما بی خودی فکرهای پرتو پلا نکن کی کی همچین حرفی زده به شما اصابانی بوده یه چیزایی گفته الو من دارم رومی خط با مادرم صحبت میکنه مامان جام گریه نکن شما خواهش میکنم یه دقیقه بوشیرین گهتا لطفا جلید چرا من اذیت میکنی تو ها اومده ببو اومده خدافز الو جانم همار سوچی من کجا سارت همون جا بود زیر مانتوت نیست همین پس فردا خوبه دوتا مون چش چش نینام سلام میرسیم نه نیست کنه باش خدافز بهش گفتی؟ آره چرا؟ پرسید نه تو نستمه بود برای نخواد چیز روز ساده دیگه دقیقه برو پولت وزر روی افجاد چی میگی؟ خانم هفته دیگه میتونم دو شمبه بیا نه دو نیستی آخه ساله بابا میبان خوارم دو شمبه کسی پنه نیست خوربونه همون شمبه بیامسیم شمبه رو به مرجان خانم بول دادم خونم که چون باشه بر خبر میدم بهت. من زینب زن بزن ببین چه حالی شده اگه بهش نمیگفتم حفیدی دیگه خودش میفهمید این چیزا رو نمیشه تا ابد قایم کرد که این پیرزن طاقت نداره داد مثلا نمیخوام این 4 آخرمون بیام از خود زندگی کسافت معنی تو رو ببین نتونسن ده شروع بگن بار اصلا دوشنبه نمیونم یعنی چی نمیان این گندی که زدی بعد درست کنی با همین پیش عزیز بهش میگی غلط کردی چه چیزایی گفتی عزیز من غلطیستم دروغ بگم پس وانم نمیام نمی ما حرفمون رو زدیم از دو ماه پیش وقت گرفتیم همین که گفتم یه خونه بزرگ پر از دیوارای سفید که حتی تابلای نقاشی کوچیک و بزرگم نتونستن اونا رو از این بی حالی در بیارن کف خونه از سنگیه که چشمای آدم ها شدن آینه اون و دیگه هیچ رنگ و روحی ندارن فقط میمونه در چوبی ورودی که تنها روزنه زنده خونه ی مرتزا با میناست. بی هدف با ذهنی که معلوم یه عالم فکرای جور واجور درون با هم درگیرنگ و روی صندلی نچندان راحتی میشینه. اینگار وسایل این خونه هم به راحت نبودن آدماش کمک میکنن. با گذاشتن اتیق مکتبولی توی جاقلمی کنار تلفن با اون نور بیرمق آباجور کنارش، کمی خیال راحت می‌کنه که مرتضیه دوست داره باز همه چیز به حالت قبل از این تصمیم جدایی برگرده مرتزد دیگه اصلاً نداره تلفن جواب بده. الان که هنوز 9 و 20 دقیقه صبحه، کلی جواب اینو اونو داده. اونم بهترین راهو برای فرار انتخاب میکنه در چوبی خونه، تنها روزانه بظاهر زنده خونه‌شه. آسانسور به اشتباه در طبقه توقف میکنه که پر از سطلای رنگ و نقاشی. اوم اینو سلام چهار که اومدم پنجم اون سلام. خانم دو. دو. ساخت نوری که از پنجره های بی پرده ناگهان توی صورت مرتزا می سفیدی ماش و خطوط عمیق صورتشو رو بیشتر نشون می میده طرز روندن ماشین گرون قیمت شاسی گلند مرتزا تو زمین در حال ساخت بازم نشون می میده که حال حاصلی درست حسابی نده جلوی ساختمون نیمه کاری که از ماشین پیاده میشه با آسانسور میره طبقه بالا جربه اون خانم با شریکش رشته افکارشو فقط برای چند لحظه اونم چند لحظه کار میکنه متفهم باشید با پتر شما نه با رزرو رز میکنید علامتا هم خدا خداش امکان نداره خدا شما آقای زارعی من سفر ولی شما خانم عسری ایشون است از مالکای ساختمان امیرآباد مگه چک اقاشون نگرفت میلیون هم بالاتر از مبلغی که دادگاه مشخص کرده گرفتن هی hey, هرچی بهشون احترام میذاری تلر قاطر میشن بیروز اومده اومدیم در شرکت شب اومدیم در خونه امروز اومده اینجا خب منم برو دکتر خانم ماجرا که هر شد دکتر که حرفش نبا بود گرفتیم. کی گرفتین من گرفتم من باهوری 3 متریا نمیتونم بخرم اون خونه پدری ما بود ما تصمیم گیرنده نیستیم شما این مبلغتون دادگاه ما اومدم اینجا یه سوالی بکنم از شما زدین تو خراب یه اون هم آدم آباره کردیم. یه بار رو نشون دادیم یه مذارت خواهی بکنیم ما جریمه پرداخت کردیم. اسقای باد و کاملا مطمئن به حرفی که زده و کاری که انجام داده با همون قامت راست <også> و های محکم به سمت شدیکش میره که بالا لباس کاملا رسمی و شیک از عصبانیتش داره نوشابه میخوره و سیگار. ولی اصلا نمیگم هر کسی در اومد تو زرتی نفسشین بالا. تو هستم و سیگاه مستوانه حرف میزن چه میدونم باقیت باشتن؟ رفتن جلسه چی مالی من که گفتم دارم میام این اومد فشقه زاید را انداخت هر کنین سرشون انداختن پایین رفتن یه طرف بگوش گاف طرف این رفتن اسمانی باز دیشب پا شدی اینجا زشت جون این کاره گره موری گره ببا با تو هم. زن وقتی گفت طلاق یعنی طلاق فقیش هم حرف مفت من خودم کشیده هم میتونم اون مانه تو رو صبح اکیلش فرمان فرسته داده نیزه باید تا دید چی اینقدر زور میزنیم بلیش کن بره از اونجایی که اونا وای زن معترض همراه با بچهش که حالا پاشون رو زمین رسیده به اندازه یه نقطه دیده میشن که تو دنیای درندشت مرتضا و شرکتش ناچیزن و اصلا به حساب نمیان. هر دو هیچ معلوم نیست به کجا خیره شدن. فضای آزمایشگاه هم همون سرمایه خونه مینا رو داره. معلوم نیست جواب آزمایش چیه. هرچی که هست مینا قمگین تر از قبله. از صدای قدماشم این پیداست که این قم به عصبانیت بیشتر نزدی کتاب اندوه مینا جز پایین به هیچ نگاه نمیده هیچ کس هم نمید. اینه که وقتی میخواد از در بیاد بیرون یه نفر سر به هوا از خودش بهش تنه میزنه و پهلوش به کنار دره خروجی بدجوری جوری کبیده میشه نشونشم پارگی اساسی سمت چپ من کت و شلوار روشان و سرحالی پوشیده یکم شعف هم تو چشماش پیدا میشه آها داره مینا رو تو خواب نگاه میکنه بگو لذتش از اینه مینا آروم خوابیده و با یه نفس امیق چشماشو باز میکنه عجیبه که مینا هم لبش به خنده باز میشه با کشقا بدی که خیلی وقت. سیفزدی چه چرا هستو شکن این هم جابتیه تست هستنم که برن نمیدونم میابد میانگار یادی یه چیزی افتاده باشه سریع از روی کناپ بلند میشه و سراغ کیفش مره یه دست برگر به سرعت حل میده توی کیفش اموزی پاکت نایمت باسه نه؟ چرا؟ بازش کردی خب بازش میکردی به شما شمال برگردیم چه رفتی به شمال داره گفتم بود این متقر بود یه ماه پیش انزا کنی من که گفتم چیزی نمیخوام ازت اول نیم پیش عزیز گفتم دو به شرطی میام دادگاه که اول بریم پیش عزیز که یادش راحت شد بعد از آن دوباره زنی زد نگران من فقط یه امزان من بعد برم بایش تو ببینم خیلی خوب بریم بلی من باید پس قبل پس فردا هر پس فردا هرچه زودتر بهتر من قبل از اون باید این بعد از شنم این باز مرتزا با سرعت از بیرون میره و بازم ما صدای پاشنه کفشای مینا رو میشنبیم که نشون میده حالا هایشون الو مینا مینا جو آزورم نه برم میام پیرام پرزم فردی یاد دونه میشینه به وقتی پیر خودمان با برم نمیشه الو پیرام بستن برم, برم فروتگاه باز یه بازی ماجرایی تازه. شاید اتفاق خوبی هم در راه باشه. شاید. نه اگه شب. لالا نداره ما بود. ها تو فقط که لاله گیره. پاسورتون چند تا شغله برام جدا می کنید. هر چه سارونجوز، قوتون نه من اشنای ارمام. درس ایدرش نیستی ندی آبای ما سرقره یه مارانتا هرچی میگرمش نیست مارانتا آره گولدو رو بیست از آتومانی یه ماهبا افتاده اینجا بیستا گرفتارم نه بابا گرفتار, با گرفتار برندره دیگه هرچی در میره میکنه خرج کن <تصفح> <تصفح> <تصفح> آزه یکی از این حال اوضا خبر نداره حداقل باید اتاقش آماده باشه مینا داره این کار انجام میده ملحف های تخت را عوض میکنه کوسنا و بالشدار رو با رویه های سفید و آبی و یه آلمه لیلیوم توی یه گلدون جلوی آینه ای توالت و چهره بیرنگ مینا از پشت اون همه گل سفید و زرد فرود هواپیما ها فرودگاه جای سوزن انداختن نیست شلو زن و مرد پیر و جوان چشم براهن و مینا تک و تنها وسط اونا سرکی مکشن راه رای خروجه و تک و توک مسافر و چرخای پر از بار چند تا چندون بی صاحبم روی ریل سرگرد همین زندگی من تو چندتون ها خب کشمی رو خامم من چی میگم به شما ای بابایین همه مسافر چرا باره برمی رسیده آسین آه. آه. <تصفيق> واقعا هر چهره با لبخند زیبای که چهره مینا در این لحظه که آزار رو تو آغوشش گرفته سرشار از شادی خند هست چیزی نیست حالا این بیلیت و پاسپارت خدمت شما تمام ندام؟ آره چیزی شده؟ چم بدونه شما یه جورو میلیمگار بارتون دست ماست تو ما نمیخواد ترقیلتون بدین دست شما نیست دست کیه پس این شه خودش کجاست پیدا میشه خانم تو بار جا میمونه فعلا بریم فردا میم ببینیم چه بشه فردا چیه شده دیگه ببینیم فردای کارش ای, ای بابا من همیز من دارم به تو میگم بیار آخه میدونم نیستی آقا زهنه تا میدونم یا دیگه هنوز دیلخور از نبودن چمدوناش فعلا دو تا خواهر هنوز نمیخواد با هم حرفی بزن خونه یه لخت و بیروح و تاریک با پرده های تماما کشیده شده و نگاه متعجب آذر به این فضا که با باز کردن در بالکن میخواد اجازه بده بلکم یه بادی به جون این پرده ها بخوره و پرده ها هم به ساز باد میرسد بشیم این البته می نمیخواد به روشن کردن آبا خونه بلکه رنگی بده به این فضای خالی بوی داره نمیام شما آشپس خونه گرفته بود صحبی بازش کردیم مرتضا کجاست؟ اونوال کاراش این وقت شب یه همچی که بردنم تو نتاقه تو دلم گفتم رفتم که رفتم تو تا دیگه پیدام کنن. نه با با کاری به کسی ندارن این همه آدم میرن میاد از چند دونم چرا نگه از آزاجون نگه همه گم شده یا جا مونده من در اصلا نگه داشت چیه مگه یه موش لباس شارت دونه عکس قفش تو اعلامیه در دوزد تو فردا چند بدون تو از من تحبیل بگیر خوبه رو راست میگفتن چی شب باکسل دیده بودن؟ من به شیوا چیکار دارم ببریم ایک چیزی بدم بپوشی پوزیدیم اون تو این همه لباس چی لپوشیدی تو من دبودم فرودگاه عروسی که نمیرفتن اون خوبه اونو ببینم این؟ بقلیش اون نختی فکر کنم تنگت باشه ببینمش ننو سیا میپوشی از این مفت ما شد قدمه تکو تنه شب نمیترسی تو این خونه دارندشت ترس ندارم همیشه شب و سر کاره میاد بابا خبر نداره اینجایی چه قشنگ این نگفته بودی بهش من خودم اون اتفاقی پیغامتو گرفتم فقط رسیدم این خرید رو کنم بیان فرود کرد. چی شد آزه؟ اینطوری بیخبر؟ شاییم که اونجوری شد دیگه مجبور شدم مداره که اونشونشون پنه متمدید تمدید نکردم مگفتم بدون فرزند قانونشی یه جور دیگه است شیش نو وقت داد. میتونستم شکایت کنم پنی دیدم بگه جونشو ندارم این که پا چرت چارتا چندون بستم باقشم گذاشتم بودم خوب گل. اون یه جف مجبند یه نقشدار آذر در حالی که قرص از که فشته هر میاره خیلی جنب توجه میکنه آه اونجا است. نه. آدامس. تنها هم یه عکس براش مونده که از کشف که در میاره. از دو تا قبر تو گورستان آلمان. جلوی شاهینه پشت مامان. مینا طاقت دیدن نداره. 20 تا میریزه میره. مینا. ندما نس. اگه سرفت بوده چی کار میکردی بس اینا نکن جو نازر الان مرتضی از میرسم به این خوارو تموز آزر نسته را چرا بابی؟ هم چند وقت دلم داره شور میزنه. تو رو دادگاه، ما رو چه بیابین کنی؟ من خیلی داشی. چرا؟ یکی گرنه می‌نی، مرتضایی. همه نمازد منتظام نمیدونه بایم خواهی چکار؟ میخوام خب به انتظامش انگار مینا منتظر همچون بحانه بود که این همه عشق و دیگه نتونه تو چشمش نگه داره آزارا متوجه میشه که دلیل گیه گیه مینا پدر و مادر و پسر آذر مینا مینا سرشون ذاره روشوننش به گش دا مجززه با اون لباس شیکی که مینا گفته بود خیلی بهش میاد بالای همون ساختمون نیمه کاره به چند تا سگ غذا میده و اونم دنبالش راه افتادن و دورش میچرخه اونجا یه صندلی هست که روش بشینه برو بروش یه عالم چراغ کوچیک و بزرگ روشن که میتونه تمام شهر رو از اون بالا رسد کنه حتی میتونه تا صبح این چراغا رو بشماره و تمام نشن دمدمای صبح یه بشقاب غذای نیمه خورده شیر زرفشوی که چیکه میکنه و پرده ها که از باد دم صبح میلرزن بازم مینا رو کنابه خوابیده از آشپسخانه میاد بیرون یه نگاه میندزه به مینا که زیر چند لا پتوه میره سراغ آذر که همچنان سیاه بوش توی بالکن به ناکجا خیره شده سلام مرتزا سلام ناشناخته. آذر چقدر عوض شدی تو کی اومدی؟ دوشت کلی منتظرت بدیم سر کار بودم تو اینجا چی کار میکنیم؟ باز هم با همون لباسای دیروز سر میز صبحونه و بروی آذر نشسته با چین پیشونی و اخم داره روزنامه برمزنه من بذارم اصد که هم نه دیگه مرسی تونستی به تو؟ نه بابا این هم آمدم رفتم نشنیدی؟ من خواب خواب بودم سویچه من کجاست مرتزا تو میزا دمه نیست؟ مینه میگه نصف این برجه رو تو سختی راستی اینه خب یکم خوشگلتر میسختی چیانین انقدر بریخت تو دو روز درمون جا بریخت همه چی عادت میکن پیسی موجب میخوایی نه دیگه تو بخواه من برم برمیگردم تو هستی امیری مارتزا نه من برم آزر بلند میشه که بره به مینا کمک کنه میناجون بیا مينواش. مرتزا فقط همینو میبینه که دوتا خواهر دارن با هم حرف میزنن اونور سالن سالان اما نمیشنوی چی میگن مینا فقط یکم شیر سر میکشه که نگاهش با مرتزا با هم گره میخوره آزر تو اتاقش لبه تخت نشسته و فقط به همهمه جر و بحث اونا گوش میده از اینکه از دستش کاری نمیاد ناراحت. چیه؟ خب سر زده آدم آدام بعد از 20 سال سر زده اومشه میاد سر. اونم اینا. اون ماده این دیگه دروغان کجاست؟ نمیتونم. چه فرق میکنه الان؟ فرغش نه که تو نازم مزرغب و نمیشد بیاد. هم به خودش بعد بگذرن دست و بال ما رو ببندین. به دست و بالا تو چیکار داره این وقت چی چیکار داره؟ ما اونش می‌کنیم میگه نمیام شما میشن آمون با این همه مکافت با شده درگشته اینجا دلش کنم بیام شمال قرار بود. قول قرار چیه وز عوض شده قرار اون چیزیه که وز عوض شد پاش بایستی قرار یعنی این نمیتونی بیایی دادگاه به نزه. ای بابا نزخم یعنی ششمال دیگه چرا دور میگی تو تو سالن انتظار مطب دکتر زنان همینطور که خودش رو با کاغذی بادن زنه و با قیافش همه. داره حرکات اینو اون مریضایی که در حال انتظار هستند باشه باشه حالمای غذا بده مینا اگه بدینم بابا زشته پول مریضا وجود چی شده ایده. چیزی نشده بده من مریضه خواهش من بدید تو دخالت نکن مینا جون مرتضی رفضه منه من نمیتونم یه همچین کارا مرتضی رفضه یعنی چی تو دکتر من حواست کجاست مینا برو سدایی تو امروز خیلی بخداری یکم بیشتر بکن بدونم اونو وقت ندارم بابا هیفه من سطوا مرز داشتم میخواستن جدا بشم ولی به محصی که بچه دار شدم بدونم این به خدا اگه بفهمم چیزی به مرتزا گفتی منصور با این عصبانیت که میره پشت فرمان میشینه خدا رو خیلی بسرم یه طرف هست بابای مخترم براقم اونا غدی بی که می‌بینی یه طرفه اون مادر مگی می‌بینی اوماده چه اوماده اساس خونه مردمو آورده ها هارون غرد غدیه داره می‌دیه عجبا به زنه غدی غدی این بار همین مشاجره لازم بود تا باز مینا نتونه اشکاشو بیشتر از این نگه داره همچنان لباش رو همه و چشاش پور از آتش که وقتی نور می‌افتت تو صورتش چشمای خیسش روشن‌تر از همیشه میشه مینا همینطور به عقب گردش ادامه میده و بالاخره می‌افته تو خیابونش اون داریا جون سلام چطوری مامان مامانت میگم داریا که داشتم هلا خب یه کاری میکنی واسه من دفترچه تلفن مامانت کجاست باز کن حافظه بیرو توش پیدا کن ب ب, ب آره باری کلا حالا ببین اسم دکتر بزرگ نیا رو می‌تونی پیدا کنی توش بزرگ نیا خوانت که این کنه خیلی خوب از چی کامت بشمید به من یه زنگ بزنه باشه یادت نره ها مرسی عزیزم مرسی بابا آشنایی دیگه نداری مردان زنگ گلقه پیدا میکنم دکتر چرند میگفته چیزی نیست که خودم میمونم بالا سر و تباته دار تازه مدیون نشد بچه داروش اگه تو اصلا بچه میخوان اگه میخواستی که این همه سال سب ن حالا اومدی با بچه اومد سالم باشه ناقص باشه بچه هم وقت دیگه درس میخونه نمیخونه معتاد نشه خلاف نکنه جدام که داری میشه دست تنها بچه همیشه اینه تفله اون بابای گوش جمع شده روز که اینجوری گرفتار نمیشد تو غربت سنس جمازش جمع نمیشه. سر تو سر دستش خیابون شلو و رانندگی ها بی سر و سامون و شاخ به شاخ شدن ماشین مینا و ماشین هایی که درست از روبرو میان اونم با سرعت و صدای یه دقا بهش کجا میدی؟ بهشون دسته تحتیل شده دسته دست دختر بچه های پر انرژی شلوخ که میخوان سوار سرویس مدرسه پیشن از مدرسه میان بیرون آزار که همچنان منتظر میناست نگار پرد شده به گذشته های دور و با یه لبخند کمرین داره به اونو نگاه داختمون قد کشیده و آپارتمان که پشت سر هم سخت کشیدن و هم هم شکل هم وای به روزی که بخوای خونه یه آدم خاصی رو توش پیدا کنی. مینا هم انگار داره همین کار میکنه شایدم شاید نگران مباده کسی اینجا ببیندش. دونه دونه شماره یه که از جلوشون رد میشه رو نگاه میکنه. البته با همون نگاه سنگین پر از غم و وسط دو تا با وجودی که هیچ کس توی راهرو نیست اما اون آروم از کفش کلیدی رو در میاره و تو مشتش میگیره برای خودش بیشتر از بقیه ورود به اون خونه رمزال مده بالاخره خونه رو پیدا میکنه کلیدو رو به در میدازه دور اطراف با کنجکاوی و نگرانی نگاه میکنه حتی انگار انتظار داره کسی از اتاق یا بیاد بیرون و بگه تو دیگه کی هستی؟ درسته که دیوارا یه خونه سفیدن اما خونه پر از سبزی گلدوناییه که روی سپایه چوبی خونه رو پر کردن چیدمان خونه طوری که صاحب خونه هر چی رو هر جایی که اشقش کشیده گذاشته اسلوب خاصی هم نداره بیشتر به خونه یه آدم مجرد شویه مینا دونه دونه گلدونا و وسایل رو نگاه میکنه حتی از پنجره خیابون رو که حالا خلوت خلوت و مادری که داره با دختر مدرسه اش رد میشه به اندازه یه مرچه دیده میشه یه سخت یک نفره اما تمیز چند تا ساده کتاب و یه میز و صندلی حتما برای زندگی صاحب خونه کفایت میکنم کف خونه خالی از فرشه اما تا دلتون بخواد نور رو پر کرده مینا بی هدف رو سندلی میشینه حتی منتظر کسی هم نیست فقط میشینه و به رو به میشین علی منتظره چشمش به دره اما معلومه که منتظر خبر خوبی نیست نگرانه، کمیم دیر شوره داره طرف هرکی که هست دیر کرده به ساعتش نگاه میکنه اما ثابت و ثامت به انتظار کشیدنش ادامه میده از جاش بلند میشه وقتی مرتزه با همون لباسایی که مینا گفت بهش میاد و هنوز عوضشون نکرده وارد مغازه کبابی میشه که جای مزرخه کرده بودم که صفحهش ده نه چی میخوای با صفحه؟ بزرگ شدن برپیه ببینیم این ها چطوره؟ رد نیست خوهرش برگشت همون که میگفتن آلمانه تو تو برگشته؟ نه دیونه است. از مامان چه خبر؟ بهتره. هم؟ هشتات ساله شدیم در این این پیشش هم منشد که برمیگشتم یادشون بودم منشد بودم آره بایی کس همسایی هم رفته بودم پسرشون جواب کردن از پیمارشتن بلدودم ببرمشون زیارت چه 5 ساله چند پیدای آی مهندس رفیقم اون مسافرت بود چی میل داریم یه اوتاش من جوجه میخواه شو شد بالاخره مکیرش فرمان فرستاده داشتن مردان دادگاه گفتم بهت تو پر پرم اینا امضا کردی؟ تو یه باشی حرفی بزن با تو که شوهرشی نیفرمی چی داره میگی من چی کارم. اصلا نمیشونه دو کلمه من حرف در میره کار خودته این همه سال رفیدین برو ببین اصلا این چی میگه باید ده سال زندگی تا زرم خواهی پاید چی میگه داشت گفتم اول میریم شمال پیش محضرم بعد میریم دادگاه شرط گذاشتیم اینجوری لاغا مجبوره 500 ساعت کنار من بشینه بول نخوره شاید دو کنار من حرف بزن باید حرف های گفتن نیمون که کسی پنمی نداشت یعنی به حرف ده سال هزم حرف نبرو بدونه زنش چشه واسی چی داره میزه بره شما رو برگردین. من خواهیم زنگی میزنم. زنگ فایده نداره علی باید بشنی یه جا قشنگ باش حرف بزنی بعد تو هم حبول داری تو دانشگله یه باید باید باید باید چه تیپیه؟ یایته؟ چی میت گفتی بلند در خب برداشته فون فرستاده دانشگاه تونتو اون بلاغام قبولش گردن پزرشو بارده سفراد رویزام <تصحیح> آکی شایده که هر دیگه نخند نگی چرا تو را از دستم میره آقا دست میکنید یکس دست جمعی از این پیرپاتر را بگیریم جان یکس <تصحیح> علی مرتزا رو با تمام وجود بقل می این فرصتیه که علی چند لحظه خودش باشه دلش، چشماش، فکرش، همونایی باشن که علی میخواد البته یه عالم غم که باید از مرتزا مخفیشون کنه چقدر سخته مینا بالای سر آذر نشسته که بلاخره بعد از برگشتنش تونسته کمی بخوابه دستشو میذاره رو دست آذر و با کنج کاوی دستشو برمیگردونه مچش موچشو از زیر موچ نگاه میکنه رده یه پارگیه که خیلی وقتی نیست جوش خورده مم. چی کار میکنی؟ هیچی من دارم میرم بیرون بگه بخواب رو بر کرد نه نه کجا بیوی؟ تو خوبی؟ بره از زیر یه شیشه کوچی یه عالمه کاغذ رو میفرسته داخل که ظاهراً همون مدارک سفارت هم و منتظر که بالاخره قرار از سفارت هم گذاشته بشه. سلام سلام. دینت از بانکیتو. ها ساموند. اطلاعاتش رو آوردین؟ اون که قبلم بودن گفتم بیارم سره مصاربه سه شمده های بفرم سه شمده سره پشت سو نبسیم سلام حالا که کارهای سفارت تا اینجا درست شده مینا دنبال بقیه یه کاراش بره بهتر اولیه سری بزنه وکیل خانم وکیل به دقیقت مدارک رو بررسی میکنه خوب این آخری چه موقع حامله شدن بود دونم برشو دلم ما یک سال داریم سن این پرونده سرکل میزنیم سفارت محال ویزا تو پیش از طلاق تایید کنه اینجوری پذیرش دانشجوریت هم کنسل میشه برای تو باید جواز مویشت منفی باشه با این وضع هنوز میخوای جداشی دکتره تازره؟ نه یکی پیدا کنم. بهم این راحتی نه پیدا میکنم یکیو تو دو شنبه دادگاه منگزنش حالا گفتم برس نکن این دیگه فهمیدن مجازدیم تا وقتی از اون بالا باشون حرفی زدیم اصلا از این حرفا نبود اینکه که چیکار باید میکردیم و نکردیم دیگه به در الان نمیخونیم <تصحیح> الان باید ببینیم فردا چه غلطی بکنیم جلیل جان پروندن رو دوباره بپرسن دادگاه این وکیل جده خیخه منه میجوه دو, دو تا تا چهار تا حواسه پس آقا ما حرف همو اول را بیشتر نده یا جلسه میذاریم صحبت میکنیم هر چی گفتن میکنیم چشم از راقت درست دقیق رو میگیم کارتون یا نه عجم شما دو نفری که رو شارژ میکنم صدا میکنیم یکی چگه کنم بزنیم تو جوی بقیدش حسن اول اول این سراغ آن زنه انسری تو تا دیازمان بخوریم بعد بریم سراغ ما سفرین. ماشاءالله سرسره سر ما. خدا دستش که آمده بود، خودم از اون بالا حرف کردم. من صحبت کردم. چون هیالا من. چیزی واقع نمی‌وتزه، اینم نه، تو گوشونانم. چی شده؟ ماشینم تورا مونده بود. راه لباسون. خلاص میگه بفسی کنن. باز نمیشه که خونه مالن. زدم علی اومد آره کلید زاقا سو خونه میخواد کهی برداشتی باشه اومد از ازا خبر داری؟ نیست نه از اون هر چیز اومد خیلی خوب نه خیلی خوب که همهش تو جلس هست من دیگه برم رس گفت میاره برات که بیدات از اوله نیست اون شایی با شده بود یه چایی بپاره بابا نه میباید برم از وقتی مالا را را که زارتا تنهاست یه خوالت هم نگیم بلتره نمیدونم کجا رفته جایی را نداره برم نگران شمالی چطور به هم ریخته است قضیه پسرش که گفتم دارد صورا وفتم بالا سرش دستشون نگاه کرد نمراگش زد. هیچ چیم نمیگه اصلا روی خودش نمیاره میکنم گردی سمبال مقاومته بودی هم وقتی تفلک عوض شد اون دوستت گل فروشه محسن مثل... سراغتو میگرف گفتی سفارش داده بودی و برد ماران چیچی ماران تا گرفتم خیقایش علی؟ هزیرش دانشگار رو نفینه با آره بده ببینم ولی این روزه بست اینگار دیگه خسته شد از نقشی که ساعتا این مرتضب رو مینا بازی کرده به دل و دماغ منتظر مینا پذیرشش رو بیاره فقط به خاطر اینکه تو زوغش نزده باشه هجب جاییه این همون جاییه که نصر روی رفته بودن یاد ازشگاه تعریف میکردن گفتن دو باید فوق لیسانس پیگزرانم دکترها قبل هم بکنه ایوا ویزا چی هم؟ سشنبه مصاحبه دارم به این گیسی سزی جدیه جدیه؟ بابا اون نامی پذیره شمه دیگه از دیگه برس هم به میدن یاد اخره شد مرتضی چی می‌کنی؟ میکنی؟ چی تو شمده دادگاه داری نگم خواست یکم بخورت حاله خورده بود اینجا نگهش نکنم داغمونه چی کار کنم علی تو که خود چاهدی چقدر بشرفتم بیا با هم بری اونجا میتونی درس بدی میتونی کار کنی آدم حسابی هستی تو ول کنی نول رو همش کارهای مسخرف، آدمای مسخرف. صبح تا شب جلسه چیزا زدن خونه مردم و رو سرشون خراب کردن حالا جلسه میذارن که چجوری جوری خسارت الان پولشون رو بکشن بالا نه بابا اینا میگم چرا نمیدین پول این بدبختارو میگه اگه بدیم شرکت ورشکست میشه 120 نفر رو باید اخراج کنیم پول اون 8 نفر رو نمیدیم که بتونیم حقوق این صد نفر بدیم اینم شد حرف ببین مرتجا چی تو حساب وسو مرتجا حساب میشدین من الان نشم عباس شده علی من دارمت میگه اما عوض شدم. تو کیا میشتنی که همزم مزد پیشش باشه تو خوبه که عوض نشدم بعد این همه سال سلام خانم امتظام بایرتون چند بار زدن دنبالتون نمیرش بایره علی همینطور که داره رد میشه تو لابی برج از کنار آزر برموشه و با شنیدن اسمش میفهمه کنه خوالی نیست از بالکون رد درفتن علی رو دنبال میکنه که حالا اندازه یه مورچه شده برو ماشین باری رنگش از نیدی سلام خوجه ای تو دفتم دو سنگکی میدون حدیعت هست دنوز میخوری؟ خب میگفت و میخوای داری من دلم شور رفت تو گفتی تا برنگشتی من رو مسلم سرم خبر میده پرس خبر داده بودن چه فرقی میکرم این چه ریختیه من گفتم گم شدی جایی رو بلد میستی من که دیدی برگشت نگران خودت باش مینا که سرشو انداخته پایین تونتون غذا میخوره و آزارم که آروم آروم یه سیب سبز رو پروست مرتضامیت بلنشه می نسم به تلفون می پره مبرد مبرد مبرد مبرد مبرد دروشد بستا برد گرشت مبرد مبرد مبرد مبرد مبرد مبرد مبرد خب شد همون که گفتم چه چی شد بلاخره؟ ایچ رفتیم گی روز ندارم واسه چی؟ نمیدون لابد پرونده دارم اگه پرونده داشته خود تو نگه همی داشتن نه چه مدوند گفتم فردا دوباره باید بری فردا که نمیشه خودم شمده یه آشنا پیدا میکنم مینه ببینم چی میکنم مینه گفت فردا میری مینه حواسش نیست ما داریم میریم شمال در روز آزای جم سنگ کس کس رو بده کردی هر رو نرسیده در مخونه سابقه ما داریم میریم شمال بهتنه گفت داریم میریم دیدن مادرم نخوش شده ردش نره <تصف> کی بود؟ نیشگه براجان را گفته بودی بهش؟ چیا؟ چیو؟, چیو؟ شما نه. رو نمیشه. نمیدونم چجوری بهش بگم. من گفتم. چون اون اصلا فکر کنم خودت گفتی بهش. چی گفت؟ راست. ای بابا. یارمزه.setopt نمی‌می‌ام. این که چیزیش نیست چیزیش نیست تو از کجا میدونی چیزیش هست یا نیست بروی نگاه بایمون چه دستشو انداز رکشو سرده یه سال نیست هم از بچهش مرد کیو در از من من چی برم بهش بکنم من شوارم رو دارم ویل میکنم اون بدبخت فرک سادن این دماخری خواهش از من کرد منم قول دادم قول خیلی خوب باشه مینا باشه نداره داره آزر توی تاریکی اتاق رو پرده های بسته لبه تخت نشسته عزی مینا شراغ روشن میکنه و میره کنارش میشه بیداری؟ وقتی آزر حرف نمیزنه مینا میره چمدونش رو بیاره که برای سفر آماده شد مرد جان گفتم گفت برام از دکترش وقت گرفته شنبه صبح چی شده ها دلخوری گریه کردی ببینم ات خب حرف بزن چیه؟ من مجبورم با مرتزا برم شمال فردا. قول دادم بهش شهرد کرده بریم شما که مثلا خیال مادرش راچ طفلکی مامانش از وقت شینل داریم جدا میشیم رخته صبح میریم شب میای. که من بیام چرا نگفتی؟ کی میگه من نمیخواستم تو بیای من خودم گفتم برگردی یادت رفته همون روز که شاهین پیدا کرده بودن از من سراغ گرفتی نگفتم همه چی رو کن برگرد ما هستیم هواتو تو داریم تو هوایی منو داری؟ تو همین دو روزه کجا هوایی منو داشتی؟ تو خیال کردی من دارم میرم تحتیداتم من حضرت شما رفتن ندارم آزرجون تو سر زده اومدی عزیز من صبح و وقتی زری شد میرسم من باید چیکار میکردم من اگه نرم این طلاق نمیده یه سال دارم میدو خواهش کردم تهدید کردم وكیل گرفتم گفته اگه بریم میاد دادگاه امضا کنه میدونی این یعنی چی حالا تو میگی من نرم خبر داری من تو یه سال چه کشیدم تو کشیدی چی کشیدی من به سرمو کردم زیر خاک وسط زمستون تو کجا بودی من اصلاً خبر نداشتم تو خواهر منی باید خبر می‌داشتی وقتی زنگ زدم بهت بگم اسمشم یادت رفته بود از مرتضی پرسیدی اسم پسر منو یادت رفته بود من فقط یه بارش اومدم مامان رو مریض علیر میشه من گفتین تو فرنگ مالجش کن یه دفعه گفتی باشه دکتری باشه بعد وقتی فکر کردی فقط پول حواله کردنه چی کم داری تو اینجا چی کشیدی تو این یه سال آزارمون من که نمی‌ذارم کن. فقط که مامان نبود ده سال قبلش بابارم من خاک کردم. تمام راه تو آمبولانس بالا سرش نشستم باش حرف زدم که خوابش نبره که آخر سرم برد من فقط 16 سالم بود مینا مگه من چند سالم بود؟ تا این سال ش سال می ح چیکارکنم؟ چند ساله ها؟ حالا چی کار میکنی؟ درتون اسولیل کردی که شیزننی مرتضا بشینی تو خونه اون همه سال من کار کردم که تو کار نکنی. من درس نکندم که تو درس بخونی. چی شد؟ همه عمر سر من مننت گذاشتی همه اوه من سر تو مننت گذاشتم؟ من تو گذاشتم؟ اوتو آشا میدونستی من کجام؟ زنده‌ام مرده. نمیدونسام نمیدونستم نمیدونسام چیکار میکنی. همه فکر میکردن تو مردی. در به در دنبال جنازت میگشتن. میگواسن برات ختم بگیرن. اون همه غیرتی در ورودی که چی بشه؟ که 2 سال گموگوشی پناهندشی تو فرنگ مف بخوری، مف بخوابی آخرش اون داد سودا برگردی همه گردن من و مرتضی باشه، سب بگم. به اون روز افتاد. همه چیزت اما فین رزی بیشتر و بیشتر شده وقتی مینا دنبال آذر و فیابون می دوید منصرفش کن از رفتن آزرت، آزرت، آزرت، آسانسور لعنتی تو طبقه پنج توقف میکنم آپارتمانی که هنوز رنگ هم تموم نشده موتزا تو این خونه بزرگ و روشن که هیچ نگاه منتظری نیست که مینام بپذیری. پذیر چی شده؟ چی شده؟ تاریکی تونیر جاده شمالو بالاخره کوه روشنی روز. مینا و مرتزا حرف به هیچ حرفی خیره و روبرو. مرتزا به جاده، مینا ذهنش تو خونه میچرخه. گشت. راستگه 4. کوچو راه افتاد. حرف نزن. صحبت. باب. خراب شد. پس دیگه دو ساعت دیگه می‌رسیم. داروش گذاشتم. برگشتیم از دلش درمی میگردی میمش میبهی میشیم درم با... خودتا ازیادم دیم چه قانون ده برسیم استه اونجا چشمای ورم کرده از گریه بیوقفه یه بیوان بزرگ آبو تا ته سر میکشه <تصفيق> این کار داره برای عشقای بعدی آب ذخیره میکنه سلام. من علی رزوان هستم، دوست مرتضی مینا. یه کیلیت گذاشته بودم من بیام بردارم. چيلي. کیلی ذخیره خونه‌مه، پیش مرتضی بود. مینا گفت می‌ذارتش پیش شما. من من چیزی نگفتم. مم... ما دیروز غروب هم همدیگه دیدیم، دم آسانسور. یای تو میاد صبح بودم، من خواب بادم بفرمین تو شهر اون دوتا مچبند یه لیوان آب و مکتبوری که تیغش بالا زده شده علی تنها کاری که میکنه فقط تیغ موکت برو پایین میفرسته یه جفتم پای تو بالکن بیشتر علی رو نگران میکنه انگار بی خبر اومدنش هم چی بی حکمت هم نبوده بله سرم بله شما خواحال مینین بله شما تنها این؟ بله. تو یکم کس نداری؟ نه معلوم. لطفاً من یادداشت کن خیلی فردا شب میام. چیزی نیست. اسفرا. چند لحظه کافیه تا آذر تصمیم بگیره. آقای رزوان بله؟ یه آدرسیه. من مسیرش بلد نیستم. کجا؟ توی آبون قوام قوام؟ سیه تیر؟ اسمش قوام بود بله جون جمهوری با چی میخواه نمیدونم خب من را مهموریه میره شناه چه؟ نه از احمدتون بشه میگم باشیم پایینه. نه یه آلم درخت و حجوم سایه هاشون روی صورت خواب مینا چلوتار یه قهف خون هست دارم یه چیزی بخوری نه <تصرف> بریم برسیم زمتا اینجوری فایده نداریم زنگ بزن باش حرف بزن خیالت راحت نه نگه زود باشه باشت گفتی بریم شمال داریم میریم دیگه من میخوام با تفرق بزنم بگو پری روز کیا دیدم دیگه از کلاسیت خدا همون که تو گروه تحقیقی رجال نسیم بود اما که تر درست کرده بود خدا مارتزوی آره اون که رفته بود کانادا بگشته دیگه تو تنمیرگاه بود با شوهرش هم بود اولش نشان الو آزر آزی آزبی شدی به من اون هم میگفت ممایی رو بر کرده باش شوارش داروخانه با کرده هنوز به من میگفت استاد گفتم برو بابا استاد کدومه ممایی که شکلش نسخه پیشه دوخونه بشه به دلگه امهش مخوره اینا نگفت رو میای. خبر خبرمنش خیلی از شما برای خریف یاده. دل خوشی نداره ازم چرا؟ ابه خوشی جای شما رو خالی میکنه اون هر وقت جای من خالی باشه خوشی آبامون توی یه جوب نمیتون نه بابا یادم این که من عروسیشون کنی یادتون میاد؟ از خانوارتون کچی که نبود اونجا بل آب فقط خودم نمیدونست کجایی من شاید حقشت میدنم خیلی وقتم می اشناسی من اینه هم نشکده ای بودیم به یه دفعه اولیه کنیس سر از ما پاییتر بود شکری بودیم شما دهش نمیدن دوم بودم که شما بگشتم با سوال دو, دو سال بعد ما خیبینا بود شما میماری؟ نه با که من رو کردم همون سر که باید چایی زباش کردم چرا میبونی؟ باید همین گش بوشتا باشه دیشتر میخواستم بیام سر از یه جای عجیبی دارو بردم بنام یه برای خورم نه زحمت تو نمیدم بعد وقتی چمه دونامان دور شدن فرم هر چه آدرس شما را دارم اون توه باید پیداش کنیم خیلی ممنون یه درخت جلو در خونه شو پنجرهای لوزی داشتی باز گوه میشین میسونم خوشکم به چندگو برم سب کنی میرم زودتر. برد از همون کوچه های قدیمیه با دیوارای آجور که کلی ماشین تو کوچه پارک شده اما هنوز شاخه های پربرگ درخت های مو و یاس که از دیوار خونه تو کوچه ریخته و یه آلم پسر جوون که دارن گلکوچیک بازی میکنن میتونه الان و به سالای قبل و قبلترش فضل کنه درها آهنی شدن رنگشونم تازه است اما دیوارا همون دیوارا و پیچ و خم کوچه‌ها همون گم شدن ها رو دارن هنوز قدم های آزر پرشورتر و تومتر شدن. تا میاد از کنده درخت بریده شده دلش بگیره در خونه ای که دنبالش میگشت صورتش از خنده لبریز میکنه هنوز در چوبیه و پنجره ها لوزی لوزی باشی, باشی. بفهم. سلام ببخشید اینجا منزل آقای قفاریه بله من آذر انتظام هستم از دوست قدیمی شیوا هستش تهران من را میافتم بذنی بذنی شبه فود شده خانم بیس ساله ولی من شنیدم بله فود شدم تو دخترشی؟ هیچکی ماما خواهیم غفاری چطورم؟ هستم خوبم میتونم اسلامی بهشون بکنم؟ تو همه چیزت میزونه؟ دانشگاه میری؟ باشه. در دربسته میشه تا خاطرات آزر بیشتر از این پودر نشن و قواه اما علی تو این انتظار بیکار نمونده هموازی بچه های محل شده همچی که به گل میرسن ازار از اون دور می‌بینه که افتان و خیزان در حالی که فقط زمین رو نگاه می‌کنه پیداش میشه. آ! یالا یالا یالا یالا. شیشو. رفیرت اوم؟ همینستونم اتون نه دیگه را رو یاد گرفتم نه که دوستان بریم واسه خوالم که تا در شوهر کرده خونه ببینی شما بامون بیان هم که تنم بخواهم بریم خونه که چی یه عالم نور که از لایه یه عالم برگ هی چشمک میزنن خالص شفاف بیدری چی بگم چه تو خف چی میخوای بگم بهت قبلا اینطوری نبود مشکل از منه خونه ندارم ماشین ندارم کار ندارم عوض شدم خب بادم عوض میشه دیگه مگه دست منه مگه تو عوض نشدی مگه تو همون مینایی ده سال پیشی مگه اون کارایی که میگفتی کردی مگه سر حرفت وای سدی شدی اونو ساختی نشدی نساختی چرا کی جلاتو گرفته بود یه بار بهت گفتم نکن نمیذارم نمیشه نمیتونی من که هرچی خواستی به دادم من که به هر سازت رقصیدم داد نزن داد میزنم چه بزنن <متحد> گفتی کار نمی کنم که درس بخونم گفتم باشه گفتی بچه نمیخوام خوام که کار کنم من خر خاک گفتم باشه هر غلطی کردم قرد زدی خونه ساختم گفتی بود تو چیست و ساختم گفتی بساز بفروشی منو تنها گذاشتی مینا منو تنها گذاشتی حالا هم داری بعد از ده سال زندگی منو با هیچ را بوچ ول می میری با هیچ را بوچ من ندونم چرا نپرسم گفتنی نیست. نیست یا آخه چیو گفتنی نیست یا میدونی چرا یا نمیدونی اگه میدونی بگو ما هم بفهمیم اگه نمیدونی تو گوه میخوری جا داشتی درست را بزن من آدمم، هم شوهرت هم. ده سال باز زندگی کردم. داری میکوشی منو چی میخوای تو خوام بلم کنی بلم کن دیگه میدونیم بگم من صبح که از خواب پا میشم دارم کسی نباشه با حرف بزن میخوام از خونه که میرم بیرون کسی منتظر نباشه برگردم دل کسی تایین نشه باسم کسی منو نخواد میخوام تنها باشم مرتضا من نباید زنت می شدم بچه بودم اشتباه کردم دو روزی که می شم نگاه میکنم میبینم پیر شدم دستم خالیه هیچی ندارم از خودم اگه بلم نکنی برم دلم اینجا می تو برن نمیشه اون طرف ساعت مخورو به رو نگو مرتزا اون همه سال که حاضر نبود من تک و تنها گلیم خودمو عذاب کشیده تازه اومدیمو ما نشد لاغل حسرتشو نمیخورم میگم سعیمو کردم بی کس مینا. اینا کسی کم دردی نیست من دوست دارم عاشقه ولی من دیگه عاشقت نیستم دوست داشتم مرتزان خیلی دوست داشتم همه چیز من تو بودی اون هم سال باید دیگه تمام شده. هیچی نهم نداصش. و با همه این حرفا بازم جاده جاده دست و درختا سبزن و یه عالم راه در پیشه. خونه قدیمی پر از راهرو و اتاق و پنجره چوبی حتی یه گلدونم که آزار از پشت پنجره میارتش داخل و نصف لیوان آبی رو که داشت میخواره به اون میده معلوم میکنه که آدمای قبلی آدمای خوشروحی بودن؟ <تصفح> بزرگیست بره دو نفر خیلی دو نیز بی بچه میرن میشه بشن نفذ یه جهازیگه هم هست تو تو فردا من شما رو من که پایی ندارم با تو نیام آره بابا تماش تو قدارم بفرمه بزنیم در رو آره میناست اینا خودمه گفتم گوشتر مشتری خودت همه آفت دوسته روز پیش رو دونجا گفت لاله, لاله تو چنده تا رسو تو چنده تا رسو دیگه بقیه تو دنسته چه فایده؟ نه شمال همه دیدن هر چقدر که خونه نرساز باشه باز دیواره با کوتاهه و خیلی از کوچه خاکی بالاخره میرسن به خونه مادر مرتزا اما در باز خونه و آمبولانس توی حیات و مرتزا که روی پله میفته دیگه معلومه چه خبر داشت؟ آره تازن سکو هم خودش سفارش میده فردا صفازهایی میتونیم ببری. چه خوب همون روزی که شما زنین زدیم شبه زنگ زد گفت پاشا بیا فرداش حالش بدتر شد دیگه گفتیم ببرمش درمونگار اونجا همه که برم گرد خونه انقدر ساکه که برش گرد منتظر ما بود گفتم هم همیشه میگه همین دو سه روزه ولی یادش میره چه خوب که امروز علی دنبال خونه برای خواهرش میگرده و چه خوب که قبل ساعت ده صبح اومد کلیدش رو بگیره. و معلوم نبود چی بزره بازم یه خونه بزرگ با چند تا اتاق اما نوسازتر از قبلی و در حال تعمیرات جزئی. تابعه من خونه مرتزا هنوز روی همون پله نشسته و آخرین نفراتی که برای تسلیت آمده دیدن و با نگاه همراهی میکنه دایی کنرش میشینه و سیگاه دوشن میکنه چیه این بوشه نشستی؟ باشو خودتو جمع و جور کن باشو باره ما از منظر بگیر و مینا برین یه استراده بکنین خستا نستم دهیم مینا را میگم حالش خوب نبود انگار چند روزه ناخشم مهر چی بود از اسمی همون حرفا, حرفا. مرتزا این زن از دست نده دست گلو این زن چی کارش کردی ها ابوشو نداشتیم با باد بهش برستیم جوانه هزار تا آرزو داره تو؟ این بره کیو داری که جمعیت کنه شد رفت و شنبه داریم میره دادگاه تو قلط میکنه میره دادگاه بعد ده سال همی میره دادگاه ها شد درستش کن چی این گوشه نشستی دایی جون عزیزم مرد مرکم میناس خرید برگشته خورما خریده برای اینکه پیش مرتزان نیاد میره ببینه کارگرها برای فردا سندگیه ها رو به اندازه کافی آوردن میارن اینه رو بگیم برو که هنوز آذر لباس سیاه تنه شو و از صبح تا الان که همه جا تاریک شده این طرف و اون طرف رفته تو این شهر شلوغ. اما نه تنها خستگی تو صورتش نیست، بلکه به حرق هم همچی برگشت بعد اگه حسرتش رو داشتی میتونیم بریم اون یکی هم که محسن گفت ببینیم اگه حسرتش رو مرتزا خیلی ممنون از رو تخت عزیز نشسته و خیره شده به لباساش که توی کمد آویزونه. یه روز یه نام روش رفتن؟ داره گفتم خوابیده خود رفزی کردم بیا این منظره منذر فکر کنم تنگت باشه آرزوم گفتم اون روزی که منظره زنگ زدم حالش برد شده عزیز خب تو عذیت نکن عزیز نخوش بود چی شد بر نمیداره بو رو فردا برمیگردی بدایی با باقر هر صد گفت گفتاری نیست نه من کرایه میگیرم خودم برمیگردم اد نداره میام زشته همه اینجا میام شنبه می می با شنبه میمونم میمونداد دادگاه امسا میکنم برمیکردن قول ددم بهت عزیز که برد برو بخواب مرتزا من نباید به عزیز میگفتن برو بخواب صبح بزود باشی روسری سری بزرگه و پرنقش و خوش رنگ. مینا اون رو روشونش راه میفته تو کوچه, کوچه ای که یه عالم لام توش روشنه با اما بوی رفتن میده بالاخره تو نور آبی کبود به دریا میرسه آزه تازه آزر فرصت پیدا کرده تو آینه نگاهی به رد پای گذر زمان تو صورتش بندازه اونم کجا؟ آینه دستشویی یه خونه قدیمی که با علی اومدن دهیر کن بابا حالا میگم بیایی بله شما نبیم نه خوالا بگم به همین هم برای یه جایی که فقط برو صدقتون برم شداره تازه داریم گوش من شما سمونم کلیر همان بدم دست محسنه بس هم بود بود. همون کلیر که پیش شما مونده بود آره شما شد شما مستجل ما. همین جله تایی برای هم حالا یه البته جاشم بزرگی این خونه قرمیه نیست نا این قید نیست اصلا که محمد رنگش مونه اگه دست سروچش بکشنم همسر باقلی هم یه بابا یه جنوب کار میکنه همویت ما یکی دو شب میاد آلی هم به کاری کسی نداره اینجا خونه شما همونجا اون بالا من برم مجا بری تبخشم شوشم تبخشم ارشیاخه اینجا اینجا برای آذر فضا و ساختمونه عاشناه آره همونجاست هم مدرسه اموس با مینا اومده بود سلام این خال خانم انتظام نیومده؟ من نمیدونم همین الان اومدم بازم طبقه پنجم اون آسانسور لعنتی که هنوز درست نشده اون خونم هنوز رنگ تموم نشده انگار همه باید هر روز یه سری به اینجا بزنن شایدم خرابی آسانسور حکمتی داره هم؟ بعد بردستا؟ بسطه اوتوبو سوال سده بین یه آدمایی که اصلا نمیش را زده شد فکر میکنه که نمیش را فقط کافیه بگه درش وقتی هسته حالت یه جای راهش گم میکنه هی پشت سر هم بد میاری چطه تو هیچی بریم برسیم زودتر تونتر از اینکه که نمیشه چی نمیبینم به چی سدم شاید آدم باشه یا خدا دستای مرتزا تماما خونیه میام میگه از ماشین پیاده شد از حس پشت این نه مرتزا بالای سر حیوان بیچاره نشست خدای من داره زج میشه میره دنبال یه چیزی بگرده چی میتونه این حیوانه که خون زیادی از دماغش را افتاده راحت کنه ماشین بش میسن با کشم اسراخت درده کسه چجوری؟ یه چاقوی کوچیک جیبی این که بیچاره رو بیشتر ازاد میده باییم شیاله تو بده شیاله تو بده باییم محتضر شال عزیزو چند تیکه میکنه که دست پای گاو ببندی اما اما میرسه اون که باید برسه اونم به موقع میرسه برای یک تنکی ده ده. بسیدن. شاگو داری این ما برسر خلاصش کنم؟ زنده میمونه. بکشیمش کنار یا آب بهش بدیم. آقا رزا بودو از رودخونه یه ساده بیار پسر. بودو. آقا مختار. آقا بچه ها برنینجا و تنب بیار. بودو بیا اینجا. بودو. نینا خونه دستاشو میبره که به آب بود بس انگشتاشو با دقت میشونه بیشتر اون انگشتری که حلقه این درخت دیگه از کجا یه درخت پیر و شاخه های پیرتر که بار و نشان دنیای نیاز آرزو رو خودش منتردن برسه به منو پارچه میگرده ولی تو این جنگم تیک پارچه کجا پیدا میشه هرکی تیکه نیاز خودشو داره آهان آه. گوشه مانتوش که پاره شده بود وقتی از درازماشگام اومد بیرون خیلی تاریکی آسمونم کم از بینوری تونل جاده نداره اما بیرون تونل بارون میاد شاید بتونه و اخم مرتزا یا کابوسای مینا رو که خوابش برده بشوره میتونه اگه بهش اجازه بدن و این اجازه رو فقط برف با ماشین دارن شیوه این تاگرام بارون زده دیگه میرا نمیتونه ساب کنه میزنه به دل شلوقی و فقط میدون سمت خوبه میرسه بلاخره لابی شلوقه تعمیل کار آسانسور مشکل با هرچی انرژی براش مونده فقط پله ها رو بالا میره طبقه یازده خسته فیز با چشمای گود رفته در بالکن بازه بارون هم که میاد با احتیاط وارد اتاق ها میشه. مم. رنگ ها از عوض شده. نشسته رو روی میز میینه. آسا چی شده مینا جون؟ آسا فکر و چه چیزی شده؟ چین بشه. فکرو شاد نباشه. کنجا نباشم فکر فکردم فکردم یه بلایی سر خودتو بردی مطمئن بودم امکان دیدمت اصلا با من زمه هم صحیح و صالم نگاه کن خورمونه برم بیا ببینم شما چی شد حریف ببینم دیر رسیده یعنی چی؟ عزیز مورد مادر مرتزا، صحب دفت نشکرد. حالا کجاست مرتزا؟ میادنم. من پیاده شدم، همه راهو دویدم. چون آنقدر زود برگشتیم بعد. و من که چیزی نیست. ما همش رفتیم گشتیم این بر بر. خونه دیدیم. خونه دیدیم؟ با علی. با فسا خوهرش خونه پیدا کنه، منم باش رفتیم. آخررشم برای خواهرش خونه پیدا کردیم هم برای من هراش شد خونه خودش رو اجاره کن. رفتی خونه؟ از... یه بار می گفت وقتی میره سفر گلدونش رو توپ میدی مرتضی میده چند بدونم هم پیداش. اما با این حرف آزار یه حسرتی می دای تو چیشی مینا. چت تو؟ من ول کردی وسط خیابون کارو چیه میکننی؟ چطه بیا بشین تا بهت بگم تو را که میومدیم خوابیدم از آزر خودشو گوشته نمیگم خواب دیدم دیدمش درست ها که تصادف کنیم قشنگ دیدمش کنار اون نهره که رفتم کنار همون درخته یه قراری گذاشتم معامله کردم معامله که هرم مرتزان. به خودم گفتم اگه آزار زنده باشه من میمونم نمیرن دادم به نمیدونم به خودم به تو نمیدونم به ولی باید پاشوایزم پامیزم اگه, اگه آذر خودشو کشته بود اون وقت کردی آذر میگی این راهش نیست مینم تو زن منیم من دوستن این راهش نیست چه فرق میکنه؟ خدا منم همین رو میخوام من اینجور اینه من حامل هم مارتزا رفتم آزمانش با جوابشم گرفتم چی داری میگه؟ خواستم بندازمش و قبل از دادگاه میداختمش دکترم گرفته بودم ولی فردا ولی نمیره باید نگهش دارم طلاق نمیخوام میخوام بمونم بمونم از آدمایی که در همین نزدیکی ها همین دور و برم امیدوارم از این ماجرا هم خوشتون اومده باشه از این فیلم و با تشکر از همراهی همه شما تا فیلمی دیگه ماجرای دیگه و کشمکشی دیگه شما رو با این عوامل به خدا می‌سپارم صدا بردار آقای علی حاجی نوروزی سردبیر و تهیه کننده فرشاد آذرنیا و من راوی و نویسنده این فیلم ملیه شبانیان هستم روز و روزگار بکا